خانم افسری با اون ترهای همیشه جذاب و دیدنی، یه طرح و رنگ جدیدی به بنرهای شرکت همیشه اضافه کرده. کمک‌هاش توی بحث کاتالوگ همیشه برای من عزیز بوده، به شدت کمک کردن بعد از 6 سال که ما کاتالوگی نداشتیم و نتونستیم کاتالوگی جمع کنیم به هول اووی لایو و ایشون دونستیم که تا یه بخش 80-90 درصدی بخش کاتالوگمون رو ببریم جلو و این به شدت برای من قابل احترام شخصیت خودشون ادب و احترام و متانت و آروم بودن خودشون و اینکه تو کارشون دقیقاً از خدا میخوام که اول از همه تو زندگی شخصیشون موفق باشن و به اهدافشون و در بعدی تو زندگی کاریشون ما بتونیم در خدمتشون باشیم و استفاده کنیم از حضورشون توی نوین الماس انشالله که خودتون در کنار همسرتون شاد و موفق و پیروز باشید